گلزاده. داستان سرزمین کوههای سبز رونالد بوها در جنگ با سر خودش شکست خورد و همه سربازا را دوست داشت اونو ترک کردن اون هم چاره نداشت جز اینکه سرزمین مادری خودشو ترک کنه. رونالد میخواست شانس خودشو امتحان کنه و به سرزمین کوهستان سبز بره که چیزای بسیار زیادی راجع به اون شنیده بود. اینکه ته دنیا قرار داره و جایی که گله های حیوانات وحشی در اونجا زندگی میکنن و میشد از رودها و دریاهای اون ماهی‌های بسیار زیادی سید کرد. رونالد در این فکر بود که به اونجا بره و باقی عمرش رو در آسایش و خوشی زندگی کنه. برای اون و همسرش که فرزندی نداشتند، کوچ کردن خیلی هم سخت نبود. در یه صحبی زیبا، سوار بر قایقی راه دریا رو در پیش گرفتند. رونالد روی دریای پهناور در قایق خود شادمان بود و همه چیز قایق حتی صدای جیرجیر تنابها براش تنین دلنشینی داشت. او صدای نسیم راکب آرومی میوزید و آب شور دریا رو به حرکت در میآورد و دوست داشت. نور خورشید همه جا رو روشن کرده بود و صدای برخورد انواج با بدنهای قایق انگار آهنگی قدیمی رو در مورد دریا مرتب تکرار میکرد. با من مهربان باش بله، مهربان باش با من، این یک زندگی زندگیست روی دریا، یک زندگی روی دریا. اما وقتی خشکی کم کم از نظر محو شد، همسرش احساس کرد که خیلی تنهاست و با صدای غمگینی گفت رونالد ای کاش بتونم بار دیگه ای تپه های قهبه شهرمون رو ببینم. رونالد گفت این یک سفر دریایی طولانیه که پایانی نداره تو نباید از تپه‌های قهوه‌ای حرف بزنی باید به فکر سرزمین عجیب کوهستان سبز باشی اونها شش شبانه روز روی آب حرکت کردند و وقتی یکی خواب بود یکی دیگه قایق رو هدایت میکرد صحبه روز هفتم هوا طوفانی شد و همسر رونالد از ترس فریاد زد. آه چه بدبختی بزرگی قایقمون در هم میشکنه و ما هردومون الان حلاک میشیم. رونالد گفت مراگه عزیزم تو نباید بترسی. مگه من دریانورد ماهری نیستم؟ پس چرا میترسی؟ من تو هوای آفتابی و طوفانی سلطان دریا هستم و قایق رو مانند پرندهای سبکبال از روی امواج عبور میدم حتی در زمان خطر هم شادی در قلب من خونه داره هوا تاریک شد و باد وحشیانه و با صدایی بلند میوزید امواج دریا چون جانورانی وحشی بودند که در پی تومه هستند زن از ترس با چشمهایی گریون گوشه قایق کس کرده بود تا اینکه رونالد گفت نگاه کن دارم از دوری خشکی میبینم زن بلند شد و به افق نگاه کرد و با چشمهایی پر از شادی در مقابلش سرزمینی کوهستانی سبز را دید عشقهاش رو پاک کرد و لبخند زد. هنوز غروب نشده بود که قایق نزدیک ساحل رسید. رونالد سعی داشت قایق رو در محل امنی نگه داره اما هنوز با ساحل فاصله داشت که قایق با سخری که زیر آب از چشم ها پنهان بود برخورد کرد و آب داخل قایق شد. رونالد که با یک دست پارو رو گرفته بود با دست دیگه همسرش رو به داخل دریا هدایت کرد و با هم در داخل دریا پریدند دریا هنوز خشمگین بود اما او شناگری قوی و ماهری بود و با تلاش خودش خود و همسرش رو به آبهای کم رسوند و رسوند ساحل شد همون نزدیکی غاری بود اونها داخل غار شدند مقداری چوب و علف خشک جمع کردند و به کمک فولاد و سنگ چخماق آتشی درست کردند طولی نکشید که شوله های آتش زبونه کشید و رونالد و همسرش لباس های خودشون رو خشک کردند و از شدت خستگی دراز کشیدند و خوابیدند. دریا تمام شب می اما اونها راحت و آروم خوابیده بودند صبح روز بعد رونالد یه چلیک دهگالونی شاهماهی نمکسود و بشکی بزرگی آرد در ساحل پیدا کرد همسرش در ظرفی که امواج از قایق به ساحل آورده بود، مقداری از شاه ماهی رو پخت و با آرد هم مقداری کیک درست کرد و با لذت تمام قضاشون رو خوردند. یکی دو روز گذشت و ذخیره غذایی اونها تمام داشت میشد. رونالد هیچ ای نداشت تا بتونه شکار کنه. قلافی هم نبود تا بتونه ماهی سید کنه. پس به همسرش گفت، باید گشتی در جزیره عجیب کوهستان سبز بزنم. تو نگران نباش و نباید بترسی، زود برمی گردم. همسرش گفت، اما ممکنه تو راه رو گم کنی. رونالد پاسخ داد، جای نگرانی نیست. هنگام عبور از جنگل روی پوست درختا. علامت میذارم و هنگام عبور از دشت ها هم با سنگ راهم هم رو مشخص می کنم. صبح خیلی زود رونالد آزمه سفر شد. وقتی از جنگلی عبور می کرد روی پوست درختها نشون ای و روی دشت ها هم با سنگ ها علامت میذاشت. رفت و رفت و رفت، تا به قله کوه رسید با خودش گفت حالا از اینجا میتونم به خوبی تمام اطراف اطرافو ببینم خورشید داشت غروب میکرد او تنها در نوک کوهستان سبز بود از بالا به اطراف خودش نگاه کرد هیچ اثری از آدمیزاد نبود و همین غمگینش کرد خسته بود و گرسنه اما هنوز امیدوار بود. پس با خودش گفت به سمت دیگه کوهستان سبز میرم شاید اونجا چیزی پیدا کنم. او از سمت دیگه کوه پایین اومد و خیلی جلوتر از خودش نوری رو دید. به سمت نور رفت و در میون درختانی که روی شیب ملایم کوهستان قرار داشتند به خونه رسید. در باز بود و داخل خونه شد. آتیشی روشن بود و نزدیک آتیش میزی با دو صندلی قرار گرفته بود. روی میز صفری سبزی پهن بود و روی اون دو ظرف غذا قرار داشت. رونالد گفت من که خیلی گرست باید چیزی بخورم. امیدوارم به خاطر اینکه از خودم پذیرایی کردم. تزگرستنگی نمیرم مرتکب گناه و تقصیری نشده باشم. بعد پشت میز نشست و تمام غذاهای داخل بشقاب را خورد احساس شادی و رضایت میکرد که ناگهان در ورودی باز شد و او صدای قدم های کسی رو شنید وقتی برگشت پیرمردی با ریش خاکستری مقابل خود دید پیرمرد گفت خب غریب کیسی از کجا به قلبه من اومدی رونالد جواب داد آیق من نزدیک ساحل دریا دوچار طوفان شد و در هم شکست امروز از صبح در جستجوی غذا سرگردون بودم اما چیزی پیدا نکردم تا اینکه به خونه شما رسیدم امیدوارم از دست من ناراحت نشده باشی که بدون اجازه شما تمام غذاهاتون رو خوردم پیرمرد لبخندی زد و گفت خیلی خوش اومدی نوش جونت امشب رو هم میتونی پیش من بمونی منم تنها زندگی می کنم. همیشه غذای کافی برای کسانی که به دیدنم میان دارم. رونالد از پیرمرد مهربون تشکال کرد و گفت من داستان زندگیم رو برای شما تعریف می کنم. امیدوارم بتونید با راهنمایی های خوب خودتون به من کمک کنید. دو مرد نشستند. پیرمرد مشغول خوردن غذا شد و رونالد داستان زندگیش تعریف کرد. پیرمرد پرسید فرزندی هم داری رونالد جواب منفی داد و پیرمرد هم اظهار تأسف کرد صبح روز بعد پیرمرد رونالد را رو از خواب بیدار کرد و گفت صبحونه آماده است و وقتش رسیده نزد همسرت برگردی که نگران توه رونالد صبحونه مفصلی را که پیرمرد آماده کرده بود خورد و گفت کاش میتونستم غذایی هم برای همسرم ببرم پیرمرد گفت اگه سفرهٔ سبز رو روی میز که هست به تو بدم در عوض چه چیزی به من میدی این سفره میتونه هر غذایی رو که تو آرزو کنی برات تهیه کنه فقط کافی اونو سه بار تکون بدی بعد پهن کنی تا تمام اونچه رو که آرزو کرده بودی در سفره ببینی رونالد که از شنیدن چنین چیزی به شدت تعجب کرده بود به سفره نگاهی انداخت و با افسوس گفت متاسفانه من بسیار فقیرم و تمام دارایی خودم رو از دست دادم و نمیتونم در مقابل این سفره چیزی تقدیم شما کنم پیرمرد گفت قول بده که پسر بزرگ خودتو به من بدی رونالد که فرزندی نداشت به سرعت گفت بسیار خوب قول میدم پیرمرد گفت پس هفت سال دیگه باید به اینجا برگردی و پسرت رو هم همراه خودت بیاری. رونالد سفره رو گرفت و از پیرمرد خداحافظی کرد. او از کوه سبز بالا رفت و از اون طرف کوه پایین اومد. از میون دشت‌ها و جنگل‌ها عبور کرد و با راهنمایی علائم‌ها و نشونه‌هایی که از خودش به جا گذاشت، راه رو پیدا کرد و بدون مشکلی هنگامی که خورشید داشت غروب می‌کرد، به قار رسید. و داخل غار شد. همسرش رو دید که کنار آتیش نشسته و عشق میریزه چون فکر میکرد شوهرش رو حیوانات وحشی کشتند. رونالد گفت سلام موراک من کنار تو هستم. زن از جای خودش پرید و با خوشحالی همسرش رو در آغوش کشید. رونالد گفت برات غذا آوردم. با گفتن این جمله سفره سبز را تکون داد و کف زمین کنار آتیش پنگ کرد و چیزی نگذشته بود که در مقابل چشمهای حیرت زده زن دو ظرف غذای گرم که بخار ازش بلند می داخل سفره قرار گرفت اونا مشغول خوردن شدند و مراک پرسید این سفره جادویی رو چطور به دست آوردی؟ رونالد جواب داد پیرمرد ریش خاک سری این سفره را به من داد حالا دیگه هیچ ناراحتی نداریم و تا وقتی که زنده هستیم غذا برای خوردن داریم چند روزی گذشت رونالدو همسرش فکر کردند در جزیره جستجو کنند تا شاید دهکده ای مردمی را پیدا کنند اونها نمیتونستن برای همیشه به تنهایی زندگی کنند شش روز در جزیره جستجو کردند صبح روز هفتم به دهکدهای رسیدند که مردمی مهربونو مهمون نواز داشت. اونها از رونالد همسرش دعوت کردند تا در اون دهکده ساکن بشند. رونالد هم قبول کرد و با کمک مردم دهگده خونه ای برای خودش ساخت. حالا اونها دوستای زیادی داشتند. یه سال نگذشته بود که صاحب فرزند پسری شدند و اون رو آیان نام گذاشتند. سالها گذشت و آیان رشد کرد. حالا او پسر بچه زیبا با موهای خاکستری و گونه های سرخ بود. اهالی دهکده اونو خیلی دوست داشتند. نزد پدر و مادرش هم بی عزیز بود. رونالد به خاطر داشت که چه قولی به اون پیر مرده ریش خاکستری داده بود اما هرکس این موضوع را با مراک در میون نزاشت. تا اینکه متوجه شد هفت سال کم کم داره به پایان میرسه روزی به همسرش گفت فردا همراه ای به اون خونه کوهستانی برمیگردم چون به پیرمردی که سفره جادویی رو به من داده چنین قولی دادم اشک‌های مراک سرازیر شد و فریاد فریادکنان گفت کار بدی کردی که چنین قولی دادی این کارت واقعا احمقانه بود کاری نمیتونم بکنم قلب من برای پسرم یک پارچه خونه و اما باید اون رو با خودم ببرم رونالد صافه روز بعد با همسرش خداحافظی کرد زن پسر رو میبوسید و عشقهاش رو هاش سر و سرازیر بود پدر و پسر عازم سفر شدند و به موقع به خونه پیر مرد رسیدند پیر مرد با دیدن اونها گفت رونالد تو به قولت وفا کردی و این بسیار خوبه آیا جدا شدن از این نوع جوون براتون سخته؟ رونالد جواب داد بله واقعا اینطوره. قلب همسرم از این جدایی خونه. تو میتونی دوباره پسرت رو به خونه برگردونی؟ البته در صورتی که قول بدی هفت سال دیگه بازم به اینجا برگردی. رونالد قول داد و بعد از پیرمر تشکل کرد و با پسرش به خونه برگشت. همسرش با صورتی خندون و چشمایی که از شادی برق میزد به اونها خوشامد گفت و پسرش رو بوسید و گفت اگه تو اونجا میموندی من از قصه دق میکردم آیان بزرگ شد در دوازده سالگی همقد پدرش بود و به همون اندازه هم قوی و نیرومند تمام های لازم رو برای شکار و ماهیگیری آموخت و میتونست مانند یه مرد در مزرعه کار کنه وقتی هفت سال دوم هم تمام شد پدر روز به روز غمگین و غمگین تر می شد روزی به همسرش گفت فردا همراه آی آن به خونه کوهستانی میرم. موراگ گریه گفت خواهش می کنم این کارو نکن بدون او من نمیتونم زنده بمونم رونالد جواب داد تو که همیشه نمیتونی در کنار پسرت باشی، هر جوونی روزی خانوادهش رو ترک میکنه. همسرش با التماس گفت، چند سالی هم صبر کن، من مدت زیادی عمر نخواهم کرد. میخوام تا زمان مرگم پسرم پیش من باشه. رونالد با اندوه جواب داد متاسفم، نمیتونم این آرزوی تو رو برآورده کنم. مراک در حالی که همچنان اشک میریخت گفت شاید مرد ریش خاکستری هفت سال دیگه هم اونو نزد ما برگردونه رونالد با دودلی گفت هر چیزی امکان پذیره صبح روز بعد پدر و پسر پیاده به سمت خونه کوهستانی به وقتی به اونجا رسیدن دیدند پیرمرد منتظر اونهاست پیرمرد گفت خوشحالم که به قول خودت عمل کردی. این کار خوبیه. حالا میخوام بدونم این پسر خوب آموزش دیده هست؟ رونالد جواب داد بله. میتونه ماهی بگیره. تیر اندازی کنه. در مزرعه کار کنه. همه اینها رو خودم بهش یاد دادم. پیرمرد گفت تو جسم اونو آموزش دادی اما من میخوام روح و فکرش رو پرورش بدم. دانش، از هر قدرتی بهتره تو و همسرت روزی به داشتن پسری مثل آیان افتخار خواهید کرد پدر وقتی فهمید که پیرمرد مرد این بار قصد داره آیان رو نزد خودش نگه داره قلبش به درد اومد ناچار تنها به خونه برگشت مراق به تلخی گریه کرد و این تنها کاری بود که میتونست انجام بده رونالد برای اینکه اونو آروم کنه گفت پیرمرد قول داده که ما روزی به وجود آی آن افتخار خواهیم کرد پیرمرد ریش خاکستری مانند پدری سختگیر شش سال از عمرش رو صرف پرورش و تعلیم او کرد و در سال هفتم گفت حالا جوونی بیست ساله هستی قوی و نیرومند خوب هم آموزش دیده ای پس باید در جستجوی شغلی باشی. من و تو باید به سفری طولانی بریم تا دوستایی را ملاقات کنی که میتونن هنگام نیاز به تو کمک کنند. به جای دشمن تراشی باید همیشه سعی کنی برای خودت دوستانی رو پیدا کنی. آن گفت من آماده شنیدن نصیحت های شما هستم. پیرمرد با مهربونی لبخندی زد و ادامه داد تو یاد گرفتهی که اطاعت کنی کسی هم که یاد میگیره چگونه اطاعت کنه میتونه روزی فرمان هم بده همراه من به قله کوه بیا پشت در دهانه نقرهی اسبی آویزون است اون رو هم نیز همراه خودت بیار آی آن؟ دهانه نقره ای رو برداشت و دنبال پیرمرد به راه افتاد نوک کوه پیرمرد گفت دهانه را سه بار بالای سر من تکون بده من به اسبی خاکستری تبدیل میشم باید سوار من شی تا بتونیم سفرمون رو به سرعت شروع کنیم پسر دهانه اسب را سه بار بالای سر پیرمرد تکون داد افیرمد بلافاصله به اسبی خاکستری تبدیل شد سپس آیآن سوار اسب شد و اسب مثل باد چارنل به حرکت درآمد آنها از تپه ها و چراگاه ها گذشتند هفت ساعت حرکت کردند تا اینکه آیآن صدای پیرمرد رو شنید که می گفت دهانه رو تکون بده آیان دستور پیرمرد را انجام داد. پیرمرد دوباره به شکل اول خودش برگشت و گفت برو کمی خزه قرمز پیدا کن و که آب را از آبی که زیر تخت سنگ جاری هست پر کن. آیان مقداری خزه قرمز جمع کرد و زرف را پر از آب کرد و نزد پیرمرد آورد. پیرمرد گفت حالا به غاری که پشت آبشار هست میری. دهانه ی قار بازه. داخل قار یه قول زخمی رو پیدا میکنی زخم زخم اونا با این خزه می و سه جرعه از آب این تانگ رو به دهان او می آیا آیان از کو پایین اومد. از کنار آبشار و شیبه تخت سنگ ها گذشت و خود رو به دهانه ی قار رسوند. او قول زخمی رو داخل قار دید. و مقداری خزه قرمز هم روی زخمش گذاشت و با تنابی از های خشک زخم را بست و سه جوره از آب تنگ خودش رو به دهان گول ریخت با این کار او گول از جاش بلند شد و به صدای بلند گفت احساس میکنم حالم خیلی خوبه و از این هم بهتر خواهد شد آی آن گفت با من دوست باش و همیشه منو به یاد بیار گول گفت خاطرت جَم باشه حتما بیاد تو خواهم بود آی آن نس پیرمرد بازگشت و گفت هر را دستور داده بود انجام داده پیرمرد گفت بسیار خوب دهانه رو بالای سر من تکون بده و سوارشم تا به سفر خودم ادامه بدیم پیرمرد باز به شکل اسب در اومد و آی آن سوارش شد اس با سرعت باد و برق بر افتاد. بعد از مدتی صدای پیرمرد شنیده شد که از آیان خواست با تکون دادن دهانه اونو به شکل اول خودش برگردونه. پیرمرد گفت به ساحل دریا برو پشت یک سنگ قهوه‌ای مسطح شاه ماهیان افتاده. اونو بردار و داخل دریا بنداز. شاه ماهیان امروز بد آورده و نیاز به کمک داره. ایان از ماسه های ساحل گذشت و به سنگ قهبهی مستح رسید. بعد ماهی را که داشت نفس نفس میزد و پیج و تاب می خورد پیدا کرد و در آب دریا انداخت. ماهی وقتی داخل آب دریا رفت جون تازهی گرفت. صدای آیان رو شنید که می گفت با من دوست شو منو به خاطر داشته باش. ماهی سرش رو لحظه ای از آب بیرون آورد و جواب داد دوست تو خواهم بود. آیان نزد پیرمرد پیرمرد برگشت و اونو باز به شکل اسب در آورد و سواره شد. اسب به سرعت رفت و رفت و رفت تا به یک قلعه برونزی رسید. قلعه ای که روی تخت سنگ دور افتاده ای نزدیک دریا بنا شده بود. غروب بود که آیان پیرمرد پیرمرد رو به شکل اولش برگردوند. پیرمرد گفت آی آن داخل قلعه برو. داخل این قلعه پری زیبایی خونه داره. اتاقهای این قلعه پر از طلا و نقمه و اشیای گرنگه که نورشون چشماتو خیره میکنه. اما تو فقط باید نگاه کنی و به هیچ چیز این قلعه نباید دست بزنی. آی آن وارد قلعه شد. و از دیدن اون همه گنج و ثروت که به نظر می رسید کسی از اونها مراقبت نمی کنه تعجب کرد. نتونست پری زیبا رو ببینه و به هیچ چیزی هم دست نزد. اما وقتی داشت از قلعه خارج می شد چشمش به توده ای از پرهای غاز افتاد و یک پر رو برداشت و داخل جیبش گذاشت و راجع این موضوع حرفی به پیرمرد نزد. آی آن و پیر مرد وقتی به خونه برگشتند که هوا کاملا تاریک شده بود اونها تمام شب را استراحت کردند سپ روز بعد باز پیرمرد تبدیل به اسب شد و آی آن رو با خودش به مرکز کشوری بزرگ و زیبا برد که قصر پادشاه در میون شهری روی صخری بلند بنا شده بود بیرون از دروازه های شهر پیر مرد به شکل اول خودش برگشت و به آیان گفت از اینجا باید از هم جداشی به غصر برو و درخواست کار کن. شاه به یک منشی نیاز داره. اگه این شغل به تو پیشنهاد شد اونو قبول کن. آیان با پیرمرد مرد خداحافظی کرد و پیرمرد هم گفت اگه مشکلی برات پیش اومد به من فکر کن اون وقت من فوری پیش تو میام. آیان از دروازه شرقی شهر به سمت قصر به افتاد و به نگهبان گفت دنبال کار میگرده. نگهبان اونو نزد رئیس کاتبان برد. رئیس کاتبان کاخ گفت من به یک دستیار نیاز دارم. دوست داری در خدمت شاه باشی؟ آیان قبول کرد و از روز بعد مشغول کار شد. او فکر کرد پرغازی که از قلعه برونزی برداشته بود میتونه قلم خوبی براش باشه. وقتی با پر پرغاز شروع به نوشتن کرد متوجه شد که چقدر زیبا مینویسه و از نوشتن و دست خط خودش لذت میبرد. رئیس کاتبان وقتی دست خط اونو دید شگفت زده شد و پیش خودش فکر کرد این جوون چه مهارتی در نوشتن داره و بعد از آیان خواست تا قلمش رو به او قرض بده. وقتی او هم با این قلم زیبا نوشت، متوجه شد این قلمه که زیبا می نویسه ننویسندی اون. او وقت فهمید که این قلم یه قلم جادوییه، قلم را با خودش نزد شاه برد و ماجرا را با او در میون گذاشت. شاه قلم را گرفت و شروع به نوشتن کرد. به راستی که قلم زیبا مینوشت. شاه دستور داد تا آی آن رو نزد او ببرند. وقتی آی آن نزد شاه اومد و با ادب و احترام مقابل او ایستاد، شاه پرسید: این قلم جادویی را از کجا آوردی؟ آی آن جواب داد: اونو از قلعه برونزی آوردم. عجب! قلعه برنزی پریه زیبایی در اون قلعه هست که نمیتونه اونجا رو ترک کنه. تو باید اونو نزد من بیاری. اهلا حضرت، واقعا من محل این قلعه رو نمیدونم. تو فقط باید اطاعت کنی. اگه این کار رو انجام ندید دستور قتل تو رو صادر خواهم کرد. آی آن به اتاق خودش برگشت و از غم و اندوه به گریه افتاد. جان او در خطر بود. اون هم به خاطر اینکه حرف پیر مرد را گوش نداده بود. بنابراین از شدت ناراحتی فریاد زد کاش پیرمرد اینجا بود. ناگهان پیرمرد مرد را در کنار خودش دید. پیر مرد گفت آی آن مشکلی داری؟ آی آن جواب داد بله من کار اشتباهی کردم. بعد آی آن به پیرمرد گفت که پرغازی از اون قلعه برونزی برداشته و حالا هم شاه بهش دستور داده تا به اون قلعه بره و پری زیبا رو به اینجا بیاره. پیرمرد گفت نباید اون پرغاز رو برمی یا حتی لمسش میکردی. این کار تو گناه بزرگیه و نوعی دزدی به حساب میاد. من به تو اعتماد کردم تو هم قرار بود به حرفهای من گوش کنی. حالا هم باید خودت مشکلتو حل کنی. آی آنگری کنان گفت باور کنید پشیمونم و نمیدونستم کارم اشتباهه. خیلی خوب. پس این درسی است برای تو. حال که قبول داری اشتباه کردی از این بابت پشیمون هستی یک بار دیگه هم به تو فرصت میدم. با من بیرون دش بیا دهانه رو سه بار بالای سرم تکون بده تا تو رو به قلعه برونزی ببرم. اونها با هم از قلعه خارج شدند و با تکون دادن دهانه اسب پیر مرد به شکل اسب در اومد و آیان سوار بر پشت اون به سمت دریا حرکت کرد. وقتی پیر مرد به شکل اول خودش برگشت آیان گفت این اسای جادویی رو بگیر و با اون ضربهی به من بزن. تا من به شکل یک کشتی در بیام. بعد داخل کشتی شو و وقتی به بندر نزدیک قلعه برنزی رسیدی، اونجا لنگر بنداز و صبر کن تا پری زیبا تو رو از پشت پنجره اتاقش ببینه. وقتی از تو پرسید از کجا اومدی؟ جواب بده که از سرزمینی دوردست میای و وقتی پرسید بار کشتی چیه؟ بگو عبریشم های زیبا و رنگین و گرانبها پری زیبا از تو میخواد که نمونه از پارچه های رو نزده اون ببری. اون وقت تو باید بگی که بهتره که خود پری زیبا به عرشه کشتی بیاد و از نزدیک تاقه های پارچه های رو ببینه. وقتی او به عرشه کشتی اومد اونو داخل کابین ببر و تاقه های پارچه ابریشم رو نشونش بده. آیان اصار اصارو گرفت و زربی به بدن پیرمرد زد. پیرمرد ناپدید شد و کشتی بزرگ و باشکوهی کنار تخت سنگی در دریا نمایون شد. آی آن سوار کشتی شد. خدمه کشتی مردان کتا قدی بودند که همگی لباس سبز برتن داشتند و کلاهای نقدار قرمز بر سب. ناخدای کشتی هم بیش بلند خاکستری و چشم تیز و باهوش داشت که کلمه ای صحبت نمیکرد و با اشاره به خدمه فرمان میداد. کشتی به سمت قلعه برنزی حرکت کرد و وقتی به اونجا رسید انداخت بعد آیان روی عرشه رفت و منتظر موند. پنجری از قلعه باز شد. بانوی زیبا نگاهی به بیرون انداخت و با دیدن آیان گفت مرد جوون از کجا میای؟ از سرزمینی دور؟ بار کشتی چیه؟ محمول از ابریشم‌های نفیس چه خوب میشه نمونههایی از پارچه ابریشمی رو به قلعه بیاری تو از نزدیک ببینم بانوی بزرگ تاقه ابریشم زیادی در کشتی هست؟ نمیتونم تمام نمونه ها رو خدمت شما بیارم شما لطف کنید به انبار کشتی بیایید و از نزدیک تاقه های ابریشم رو ببینید بسیار خوب پیشنهاد شما رو میپذیرم پری زیبا از قلعه خارج شد و داخل کشتی رفت آیان اون رو به کابین راهنمایی کرد جایی که تاقه های پارچه ابریشم نفیس در اونجا بودند پری زیبا با دقت مشغول تماشای پارچه‌ها و لمس آنها بود که صدای برخورد امواج را به کناره‌های کشتی شنید و فریاد زد وای بر من چیکار دارید میکنید آی آن جواب داد ارباب من پادشاه دستور داده تا تو رو نزد اون ببرم اون آرزو داره با شما ازدواج کنه و شما ملکه سرزمین ایشان بشین. پری زیبا گفت این وظیفه توست که دستور اربابت را اطاعت‌ها اجرا کنی و من تو را مقصر نمی‌دونم اما دوست ندارم همسر پادشاه بشم ترجیح میدم که در قلعه خودم بمونم بعد در حالی که صحبت می‌کرد یک دسته کلید رو از میون کمربند خودش بیرون آورد و داخل دریا انداخ و به آی آن گفت کلیدهای من در دل آب ها گم شدند. حالا دیگه کسی نمیتونه وارد قلعه برنزی بشه. کشتی سینه آب‌ها را شکافت و به قصر پادشاه نزدیک شد و اونجا پهلو گرفت. و آی آن و پری زیبا قدم به ساحل گذاشتند. سه بار عصای جادویی را تکون داد، کشتی ناپدید شد و پیرمرد ریش خاکستری ظاهر شد و گفت: دهانه نقره‌ای رو بالای سر من تکون بده بعد خودتو این بانوی زیبا بر پشت من سوار شین آی آن دستور پیرمرد را اجرا کرد و پیرمرد که به شکل اسب در اومده بود همراه دو سوار خود چون برق و باد به سمت شهر پادشاه حرکت کرد و وقتی به اونجا رسید آی آن دهانه رو دوبار بار تکون داد پیرمرد به شکل اول خودش برگشت آن دو از هم خداحافظی کردند و آی آن همراه زن زیبا وارد قلعه شد و مستقیم به دیدار شاه رآفد شاه از دیدن بانوی زیبا خوشحال شد و کار خواست تا وسایل پذیرایی و استراحت پری زیبا رو مهیا کنه صبح روز بعد به دستور شاه پری زیبا رو نزد او آوردند و شاه گفت فرشته زیبای من، مایلی همسر من بشید؟ پری زیبا گفت تا قلعه برونزی رو به اینجا نیارید و کنار قلعه خود بنا نکنید امکان نداره پیشنهاد همسری شما رو قبول کنم. فکر کنم آیان بتونه این کارو بکنه. شاه دستور داد آی آن رو نزد او بیارند. ای آنکه به اتاق رئیس کاتبان برگشته بود و مشغول کار بود شنید که شاه اونو احزار کرده او فرمان را اطاعت کرد و به قصر شاه رفت شاه گفت تو باید قلعه برونزی رو از محل خودش جابجا جا کنی یا به اینجا بیاری و کنار قلعه من قرار بدی آی آن از شنیدن این دستور چشمهاش از حدقه بیرون زدن. او با فریاد گفت چگونه، چگونه امکان داره من بتونم چنین کاری بکنم. شاه گفت نمیدونم. اگه دستور منو اجرا نکنی مرگ در انتظارت خواهد بود. آیان به اتاق برگشت. مدتی با آقا اندوه در اتاق قدم زد و اشکهاش سرازیر شدند. بعد پریاد زد کاش مرد خاکستری اینجا بود. طولی نکشید که پیرمرد مرد خاکستری به اتاق او اومد و گفت باز چه مشکلی پیش اومده آی آن. آیا آن گفت شاه مأموریتی غیر ممکن رو بر عهده من گذاشته. او از من میخواد که من قلعه برونزی روی صخره دورافتاده رو بردارم و به اینجا بیارم و کنار قلعه پادشاه بنا کنم. پیر مرد گفت همراه من بیا. پیرمرد و پسر از شهر خارج شدند. آیان سه بار دهانه رو بالای سر پیرمرد تکون داد و او به اسبی تبدیل شد و آیان سه بار اسب خاکستری شد. اسب چون باد و برق حرکت کرد. اونها رفتند و رفتند تا کنار قار قول رسیدند. وقتی پیرمرد به شکل خودش برگشت به آیان گفت داخل غار برو قولی که زخمی بود و تو نجاتش دادی میتونه مشکل تو رو حل کنه ازش بخواه دستور پادشاه رو انجام بده آیان از روی سخراهای شیبدار گذشت و وارد غار شد قول کف غار خوابیده بود او بدن قول رو لمس کرد قول بیدار شد و پرسید تو کی هستی که اینجا اومدی و با من چی کار داری؟ آیان از اینکه قور با ترش رویی از او سال کرد خیلی ترسید اما به خودش مسلط شد و گفت جناب قور من همون کسی هستم که روی زخم تو مرهم گذاشتم و آب شفا بخش و خزه به تو خوراندم تا خوب شدی بله بله یادم اومد درد شدیدی داشتم و تو منو از اون درد نجات دادی حالا چی کار میتونم برات انجام بدم بگو؟ حتی اگه بخوای کوه رو هم بلند کنم و داخل دریا بندازم اینو برات انجام میدم. آی آن با صدای بلند خندید و قول هم از خنده او به خنده افتاد. اما صدای خنده او بسیار وحشتناک بود. صدایی شبیه رعد و برق. بلاخره آیان به قول گفت که شاه از او چه کاری خواسته و قول هم گفت که امشب همراه مردان قوی خود این کار رو انجام خواهد داد و از ایان خواست از اونجا دور بشه تا بتونه کارش رو خوب انجام بده. آیان تشکر کرد و نزد پیرمرد ریش خاکستری برگشت و به همون شکل که اومده بودند به قصر شاه برگشتند و ایان از پیرمرد خداحافظی کرد. اتاقش رفت و دراز کشید ناگهان صدای بلند و خشمگین رعد و برق بلند شد طوری که دیگه نمیتونست بخوابه و از ترس به خودش میلرزید انگار تمام دنیا میخواست در شعله‌های آتیش رعد و برق بسوزه صدای طوفان و رعد و برق بلندتر شد و بعد انگار زمین لرزه‌ای رخ داده باشه صخره زیر قلعه شروع به لرزیدن کرد ماننده کشتی در میان امواج سهمگین طوفان آیان به شدت ترسیده بود بالاخره طوفان تمام شد و سکوت جا رو در بر گرفت صبح وقتی آیان از پنجره اتاقش به بیرون نگاه کرد قلعه برونزی رو کنار قلعه شاه و دونست که صدای طوفان و رعد و برق را قول ها ایجاد کردند. و زلزله هم زمانی صورت گرفت که قلعه برونزی رو لای تخت سنگ ها کنار قصر شاه قرار دادند. شاه که بسیار خوشحال و شادمان بود به پری زیبا گفت خب حالا قلعه برونزی تو کنار قلعه منه و باید دیگه همسرم بشی پری زیبا گفت بیفایده است نمیتونم با تو ازدواج کنم، من دست کلید خودم رو در دریا انداختم و نمیتونم وارد قلعه برونزی بشم چون تمام درها بستند و با هیچ کلید دیگه باز نمیشه شاه گفت نگران نباش، آیان کلید ها رو هم پیدا خواهد کرد بعد شاه آیان رو نزد خودش خواست و به او دستور داد تا برو کلید کلیدهای قلعه برونزی رو پیدا کنه آی آم با ترس گفت: پادشاه ها، چطور میتونم در دل دریا کلیدها رو پیدا کنم؟ مأموریتی به من محول میکنید که انجام اون غیر ممکنه. شاه گفت: یا کلیدها رو پیدا میکنی یا میاری یا اینکه فرمان قتل تو صادر خواهد شد. باز آی آم به اتاقش برگشت، مطمئن بود که پایان عمرش نزدیکه. چگونه ممکن بود او بتونه کلیدها رو پیدا کنه؟ گریان فریاد زد ای خدا کاش پیرمرد اینجا بود هنوز حرفش تمام نشده بود که پیرمرد را کنار خودش دید پیرمرد با لبخندی از او پرسید بازم دچار درد سر شدی؟ آی آن این بار شاه از تو چی خواسته؟ آی آن جواب داد دستور داده تا کلیت های قلعه برونزی رو که پری زیبا تو دریا انداخته براش بیارم. پیرمرد گفت همراه من بیا. سفری طولانی در پیشه. آی آن سوار اسب خاکستری شد و اسب نرد به سمت ساحلی حرکت کرد که آی آن در اونجا شاه ماهیان را پیدا کرده بود. وقتی به ساحل رسیدند، پیرمرد به شکل اول خود برگشت. به آی آن گفت به ساحل برو و شاه ماهیان رو صدا بزن. وقتی او اومد ازش خواهش کن تا کلیت ها رو برای تو پیدا کنه. آیان از روی شنها گذشت و به کنار دریا رسید و شاه ماهیان رو سه بار صدا زد. شاه ماهیان سرش رو از میون موجهای آروم بیرون آورد و گفت چه اتفاقی افتاده که منو صدا میزنی؟ آیان گفت من کسی هستم که تو رو نیمه جون روی سخراها پیدا کردم و داخل آب انداختم. حالا به کمکت نیاز دارم. تو به من قول دادی که دوستم باشی و همیشه منو به خاطر بیاری. راست میگویی. حالا چی می‌خوای؟ خواهش میکنم کلید قلعه برونزی پری زیبا رو که تو دریا افتاده برام پیدا کنی و بیاری. ماهی ناپدید شد. مدت زیادی طول نکشید که برگشت و پرسید کلیدها رو پیدا کردید جواب داد بله اونها رو به تو بدم اما باید قول بدی که دیگه منو صدا نکنی قول میدم شاه ماهیان کلیدها رو به آیان داد و ناپدید شد آیان با خوشحالی نزد پیرمرد برگشت و به همون ترتیبی که به ساحل اومده بودند به سمت قصر پادشاه حرکت کردند. آی آن پیرمرد رو به شکل اولش برگردوند و با او خداحافظی کرد و بعد به قلعه شاه رفت و کلیدها رو تقدیم پادشاه کرد. شاه با خوشحالی گفت: آفرین بر تو. میدونی که اگه بدون این کلیدها برمیگشتی مرگ تتمی بود. شاه به اتاق پری زیبا رفت و کلیت ها رو به او داد و گفت بفرمایید این هم کلیدهای های قلعه برونزی شما که خدمتکار جوون من تونسته اونها رو به دست بیاره. بانوی زیبا لبخندی زد و گفت آفرین بر اون جوون شجا خب حالا شما باید با من ازدواج کنید. پری زیبا گفت متاسفانه نمیتونم. مگه شما قول بدید که تنگی آبی رو از چاه شفا بخش برای من پر کنید و بیارید. نگران نباشید. من الان آیان رو احضار میکنم و فرمان میدم تا این کار رو هم انجام بده. شاه دستور داد تا آن رو نزد اون بیارن و به او گفت تنگی آب از آب چاه شفا بخش برای بانوی زیبا بیاور. اما پادشاه ها، این چاه در کجاست؟ نمیدونم، این وظیفه توست که جستجو کنی و اونو پیدا کنی و اون چرا که خواستم انجام بدی وگرنه جون خودتو از دست خواهی داد. آی آن با ناراحتی از قصر خارج شد و به اتاقش برگشت و گفت کاش این بار هم پیر مرد حاضر بشه و به من کمک کنه. با گفتن این کلمات، سر و کله پیرمرد پیداش شد و گفت پسره که بیچاره من، بازم دوچار مشکل شدی؟ درسته؟ بله پیرمرد مهربان، این بار شاه از من خواسته تا ظرف آبی از چاه شفا بخش بیارم. با من به بیرون قلعه بیا، نباد وقت و تلف کنی. اونها از کار خارج شدند؟ آی آن؟ دهانه را سه بار بالای سر پیرمرد تکون داد و اونو به شکل اسب درآورد و بر پشت او پرید و اسب نرد به سمت دره دور افتاده حرکت کرد وقتی به اونجا رسیدند آی با تکون دادن دهانه پیرمرد را دوباره به شکل اولش برگردوند پیرمرد گفت با عصای جادویی من, من رو بزن تا بمیرم آی آن گفت نمیتونم چنین کاری انجام بدم. پیرمرگ گفت باید این کار را بکنی. وقتی من مردم، سه کلاق بالای سر من به پرواز در میان. باید از اونها بخوای تا تو رو به سمت چاه شفا بخش ببرند و تهدیدشون کن که اگه این کار را انجام ندن، اونها رو میکشی. دو ظرف آب هم با خودت بردار، و از چاهی که كلاقها نشوند میدن پر کن آی آن با اون عصا پیرمرد را زد و پیرمرد افتاد و مرد آی آن با اندوه و ترس بالای سر پیرمرد نشست و شروع کرد به گریه کردن منتظر بود ها از راه برسند اما خبری نشد از ترس و نگرانی میلرزید و فکر میکرد اگر کلاخ ها از راه نرسند ممکن پیرمرد بیچاره هم زنده نشه چون پیرمرد به او گفت که بعد از پیدا کردن چای شفابخش باید از اون آب برای زنده کردن دوباره اون استفاده کنه اون همینطور طور غمگین بالای سر پیکر بیجان پیرمرد نشسته بود اما خبری از کلاغ‌ها نبود حدود نیم ساعت بعد سه کلاق خودشون رو بالای سر پیر مرد آیان بلند شد و فریاد زد خوب گوش کنید. با این عصای جادویی هر سه شما رو می‌کشم. مگر اینکه منو به سمت چاه شفا بخش ببرید. کلاق ها یکی پس از دیگری گفتند دنبال ما بیا، دنبال ما بیا، دنبال ما بیا. کلاخ ها کمی جلوتر بالای سر آیان به پرواز در اومدن و آیان دنبال اونها رفت و وارد قاری شد قاری طولانی و تاریک آیان چیزی نمی دید، اما صدای آب رو می شنید. یکی از کلاخ ها گفت می تونی رو از چایی که کنار اون استادی پر از آب شفا کنی او هم این کار رو کرد و به سرعت به محلی که پیر مرد افتاده بود برگشت چند قطره از آب شفابخش رو روی لبها چشم و گوش پیرمرد ریخت و پیرمرد بلافاصله زنده شد و ایستاد و گفت زود باش منو به اسب تبدیل کن آی آن دستور رو اطاعت کرد و سوار بر پشت اسب به قصر پادشاه برگشت آیان آن ظرف آب شفا بخش را نزد پادشاه برد و شاه هم اون رو تقدیم بانوی زیبا کرد و گفت این هم از آب شفا بخش دیگه بهونه نداری و باید همسر من بشید. پری زیبا گفت نه اینطورم نیست من باید از بین تو و آیان یکی رو انتخاب کنم او مردی شجاع و جسور شما باید با هم مبارزه کنید من با برنده این مبارزه ازدواج خواهم کرد شاه گفت حق با شماست بدون هیچ شکی برنده این نبرد من هستم شاه به آیان خبر داد که خود را برای مبارزه فردا آماده کنه آیان وقتی خبر را شنید بسیار نگران شد و آرزو کرد تا پیرمرد نزد اون بیاد پیر مرد فاصله حاضر شد و پرسید باز چی شده ای گفت: شاه میخواهد من فردا با او مبارزه کنم جای نگرانی نیست تمام بدن خود را با آب شبابخشی که با خودت آوردی شستی شو بده. اینطوره هیچ ازلححی بر بدن تو کارگر نخواهد شد. شمشیر کوچکی هم به تو می دهم که میتونی در مبارزه فردا از اون استفاده کنی و ضربه به شاه بزنی. پیرمرد شمشیر را به آیان داد و ناپدید شد. صاف روز بعد آیان به محل مبارزه رفت. اما قبل از اون بدنش رو با آب شفابخش شستشو داده بود. پری زیبا گفت کسی که بتونه در این مبارزه پیروز بشه با من ازدواج خواهد کرد و وارث تمام سرزمین کوهستان سبز و شاهین سرزمین خواهد شد. نبرد آغاز شد. شاه سه بار به سمت آیان حمله کرد و با شمشیر خود سه ضربه به بدن او زد. اما هیچ یک از ضربه ها زخمی بر بدن او وارد نکرد. آی آن تنها با یک بار حمله با شمشیر کوچکش ضربه‌ای به شاه زد و او را مجروح کرد. شاه هم بلافاصله روی زمین افتاد و جانزفا. پری زیبا گفت درود بر شاه جدید درباریان با هم فریاد زدن درود بر شاه جدید پری زیبا با آیان ازدواج کرد و جشن با شکوهی برگزار شد پیرمرد مرد ریش همراه پدر و مادر آیان به جشن اومدند پیرمرد به پدر و مادر آیان گفت رونالد و موراگ گفته بودم روزی خواهد رسید که شما به داشتن چنین پسری افتخار خواهید کرد این همان روز است آی آن از دیدن پدر و مادرش بی اندازه خوشحال شد و اونها را در آغوش گرفت و بوسید و از اونها خواست تا اونجا بمونند و با او و با همسرش زندگی کنند به این ترتیب سالهای سال آی آن در اون کشور خدمت کرد او و ملکه با مردم بسیار مهربان بودند و مردم نیز از ته دل اونها رو دوست داشتند سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها